بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النحو الواضح في قواعد اللغة العربية تأليف دلوي ساندي علي الجارم ومصطفى أمين حس حمتجن أن النحو الواضح اسمش حس إن صار النحو بسيار واضح نحو الواضح در دو مرحله نوشته شده است برای ابتدائی ها و ثانویه دوره ابتدائیش هم سه جز هست و دوره ثانوییش هم سه جز هست کتاب بسیار بسیار ساده و واضح بدون مقدمه وارد بحث اصلی شوید المجرد والمزيد مجرد و مزید رو آورده یعنی در درس اول مجرد ها و مزید ها رو بحث می کند. در دو سه قسمت این بحث رو آورده است اولین درسش ابواب المجرد هست در یک قسمت دو قسمت و سه قسمت این بحث رو آورده است در قسمت اول ابواب مجرد خب ابواب مجرد در سلاسی 6 تا هستند و در رباعی یکی جمعن با هم میشوند 7 تا به الامثله 7 تا مثال آورده نصر ینصر یعنی مجردها یا بر وزن هست در زبان عربی فل... کلمه‌های فیل های مجرد یا بر وزن فعلا يفعلو میواشا مانند الناس را جو دو ضرب يضرب فعلا يفعلو سفتح يفتح فعلا يفعلو چار فعلا يفعلو فرح يفرحو پان کرو ما يكرمو فعلا يفعلو شیش حَسِبَ يَحْسِبُ فَإِلَ يَفْئِلُ پس در زبان عربی های سلاسی مجرد بر یکی از این باب مازی با مزارش با هم فَعَلَ يَفْئُلُ فَعَلَ يَفْئِلُ فَعَلَ مازی که بر وزن فعلا باشد مزارش یا بر وزن یفئلو هست یا یفئلو یا یفئلو اما زمانی که مازی بر وزن یفئلو باشد مزارعش یا بر وزن یفعلو هست یا بر وزن یفعلو ماننده فرح یفرحو حسیب یح سیمو و زمانی که مازی بر وزن فعوله باشد مزارع بر وزن یفعلو هست که مانند کرومه یک رومو پس شدن شش دباب در ربای مجرد هم بر وزن فعلل یفعللو دحرج یدحرجو تم انا یو تم ایرو که در کتاب آورده است القائده قائده قسمت اول الفعل المجرد قسمان فعل مجرد بر دو قسمی باشد سلاسی و رباعی سلاسی و رباعی فعل مجرد یا سلاسی هست یا رباعی فالثلافیٰ له مع مزارعیه سه تا باب. مجرد مجرات. با مزارش شش باب دارد. هیا ابراتند از نصراین شروع یا بر وزن فعلیف علمی باشند. دو زر بی یا بر وزن فعلیف علمی باشند. مانند دزر بی یا بر وزن فعل فتح حیف تحو بر وزن یف علو بی باشند چهار فریح یفرهو یا بر وزن فعلیف علو بی باشند پنج کرم یکرمو یا بر وزن فعلیف علو شش حسب یحسیبو یا بر وزن فعلیف علو فیله های سلاتی عرب سلاتی مجرد بر وزن یکی از این ششتا بی باشند ماضی و مزارشون با هم أما الرباعي اما الربعي المجرد أما الرباعي المجرد أما رباعي مجرد فله وزن واحد فقط يك وزن دارد وهو أن يكون مضارعه مضموم و وزن الشيء هو ان مضارعه مضموم حرف المضارعة وهو أن يكون مضارعه و آن هست که مزارعش مضموم حرف المضارع حرف مزارع زمه داشته باشه فعلل یو لیلو. حرف مزارع چی داره؟ زمه داره یا هست دیگه فعلل یو لیلو. مکسور ما قبل آخری ما قبل آخر کسره داشته باشه فعلل یفعلیلو لیلو. ما قبل آخر یعنی یک حرف مونده به آخر کسره داشته باشه. این شده از تعریفش پس قاعده اول کتاب محول الواضح